فصل چهارم اکنون به چهارمین افسانه این هفته با عنوان درخت سیب توجه بفرمایید سالها پیش در نزدیکی دهی و روی تپه‌ای درخت بیسمری سر به آسمان کشیده بود این درخت همیشه ویلتو گارد در این درخت دنیاست، چون از کنار پایش نهر کوچکی روان بود و هیچ وقت بی آبی نکشیده بود یکی از روزها که درخت تنها با خودش و زندگیش خوش بود و از آن بالا به همه چیز و همه کس نگاه می‌کرد و شاد بود یک دفعه آدمی را دید که دارد به طرف او با خودش گفت بفرما یک مزاحم یک آدم آمد تا امروز مرا اذیت کند توی این آبادی و اطرافش این همه دشت و کور و صحرا است آن وقت این مرد بلند شده و یک راست آمده اینجا و حال امیدوارم خیلی اینجا نماند و کارش را زود انجام دهد و برود و از همه اینها مهمتر خدا کند کاری به کار من نداشته باشد درخت تنها و مغرور هنوز با این گلایه های خودش مشغول بود که مرد خسته و کوفته آمد وزیر سایه او دراز کشید و گفت آخهش راحت شدم چه خوب شد سر راه این درخت رو دیدم وگرنه تا به آبادی میرسیدم. دیگه از خستگی تا و توانی برام نمی‌موند بهتره همینجا کمی استراحت کنم بعدم آبی به سر صورتم بزنم و راه بیفتم طرف آبادی مرد که معلوم بود خیلی پیاده روی کرده ادامه داد همش تقصیر خودم بود اگه عباسم رو جمع کرده بودم اون گسوارارو گم نمی‌کردم و این همه سختی نمی‌کشیدم درحال باید بعد از استراحت بازم دنبالش بگردم درخت با شنیدن این حرفا با خودش گفت نخیر، این آدم آمده که امروز مرا خراب کند مثل اینکه راستی راستی میخواد اینجا بماند حالا که این طور شد من هم کاری میکنم که دیگر این طرفا پیدایش نشود و زیر سایه من نخوابد وگرنه از این به بعد کارم زار است و یک لحظه آرامش ندارم درخت این را گفت و بعد شاخهایش را در مسیر باد قرار داد تا این طرف آن طرف دروند و سایه را از روی مرد خسته دور کنند و نور گرم خورشید را بر سر رویش بباشند لحظه‌ای گذشت. مرد خسته بلند شد، آبی به سر صورتش زد و دوباره دراز کشید. نور خورشید آزارش داد. کمی به این طرف و آن طرف غلطید و دستش را روی چشمانش گذاشت تا از گزند نور آفتاب در امان بماند. اما بالاخره کاری از پیش نبرد و در حالی که کاردش میزدی خونش در نمیآمد، از جا بلند شد. و نگاهی به درختم داخت و گفت این دیگر چجور درختی است با این همه شاخ و برگ نمیتواند از نور خورشید جلوگیری کند درخت که اسبانی شده بود گفت به من چه مربوط است که برای تو سایه پهم کنم مرد گفت با این آب روان اینجا وجود تو به چه درد میخورد من حتما باید چند روز دیگر نهالی بیاورم و اینجا بکارم تا لااقل این آب روان خدا به هدر نرود درخت توی دلش به رهگزار خندید و او را به حال خودش گذاشت مرد را افتاد و رفت و درخت دلش خوش بود که از آسایش و آرامش خودش دفاع کرده است. اما دو سه روز بعد وقتی دید همان مرد نحال به دست دارد به طرف او میآید خیلی عصبانی شد. مرد آمد و با بیل بزرگی که همراهش بود چاله ای کند کوچک را در کنار درخت خاشد و را افتاد رفت. درخت صدای او را میشنید شنید که با خود می گفت امیدوارم هرچه زودتر به بار بنشینی و رهگذران را از سایه و میوهات بهرمند کنی مرد ره گذر که رفت درخت بزرگ و بیسمر رو به نهال کوچک کرد و گفت معلوم است تو برای چی آبادی و آبادونی رو ول کردی و اومدی اینجا زندگی کنی؟ نهال کوچک اعتماد به نفس عجیبی داشت من به پای خودم نیامدم اون مرد باغبان مره آورده و حتما حکمتی در کارش هست درخت گفت چه حکمتی؟ اینجا باد و طوفان هست و تو به زودی میشکنی؟ نهال کوچک کوتاه نیامد همانطور که تو وقتی نهال کوچکی بودی و نشکستی من هم به یاری خدا نمی شکنم و بزرگ و بارور می و به آدمها خدمت میکنم. درخت بزرگ لبخند تمسخرآمیزی زد چه خدمتی؟ همین وقت که یک درخت بتونه وجود داشته باشه و از هوا و آفتاب و آب لذت ببره کافیه میوه و سمر و استفاده مردم همش حرفه نهال کوچک جواب داد. اگه یه درخت نیوه و ثمر و سایه نداشته باشه و با یه تکه چوب و خوشک چه فرق داره؟ درخت بزرگ عصبانی شد. بارو بابا تا هم دلت خوشه. هنوز بچه یو نمیفهمی. بزرگ که شدی میفهمی من چی میگم. هنگامی که او سال‌های گذشت، کوچک بزرگ و بزرگتر شد و به سمردهی رسید. میوههایش به قدری لرمز و شیرین بودند که هر رهگذری را به تحسین و تعریف با می داشتند. هر کس از آنجا می‌گذشت، چند از میوه او را می‌خورد و زیر سایه دراز میکشید می‌کشید و خدا را شکر می‌کرد. پرنده های آن اطراف که همیشه از درخت بزرگ می‌ترسیدند و هیچ وقت روی شاخه‌هایش لانه نمی‌ساختند، آمدند و روی شاخه‌های درخت سیب، یعنی همان نهال کوچک که حالا بزرگ شده بود، لانه می‌ساختند و چچچ می‌زدند. یک روز چند دایی بچه که از آنجا رد میشدند، از درخت سیب بالا رفتند. مقداری سیب چیدند و از روی قفلت یکی دو تا از شاخه‌های او را هم شکستند. درخت جوان از در نالید و گریه سرداد. در همین لحظه درخت بزرگ رو به او کرد و گفت این هم نتیجه سمر دادن. دیدی چه بلایی به سرت اومد؟ هیچوقت دیدی کسی جرئت کنه و از شاخهای من بالا بیاد و اونا رو بشکنه؟ درخت جوان حرفی نداشت بزنند. ساکت و آرام و حرفهای درخت بزرگ گوش میداد و بی صدا می گریست. روزهای بعد هم تعدادی دیگر از اهالی آبادی آمدند و بقیه میوههای او را چیدند و چندتا از شاخهای او را هم شکستند و رفتند حالا زبان درخت بزرگ حسابی دراز شده بود و هرچه از دهانش در میآمد به درخت جوان میگفت درخت جوان هم که حرفی برای گفتن نداشت با دردهای خود میساخت و میسوخت روزهای گرم تابستان یکی بعد از دیگری گذشتند و پاییز از راه رسید آن سال برای اولین بار در زندگی درخت سیب زمستان زود بود و هنوز نیمی از فصل پاییز نگذشته بود که سرما از راه رسید بادی سرد و سوزان میوزید و همه چیز را در هم میکوبید و نابود میکرد درخت سیب از آن بالا مردم و آبادی را میدید که هر روز میآیند و از آن دور و اطراف شاخه شکسته و چوب های روی زمین را جمع میکنند و به خانه های خود تا با آنها آتش درست کنند و گرم شوند. یک روز درخت سیب و درخت بزرگ میسنر هر دو با چشمان خود دیدند که تعدادی از بچه‌ها و مردم آبادی دارند به طرف آن دو می‌آیند. درخت بزرگ که مغرور و خودپسند بود، رو به درخت سیب کرد و گفت: فکر می‌کنم امروز دیگه کار تو ساخته است. خوشحالم که از سرت راحت میشم. چون از وقتی تو در اینجا هستی، من هم یک لحظه آسایش و آرامش ندارم. خدا کنی زودتر بیان و کَلَق بکنند و هیزمت خوش با خودم که به این آدم رو ندادم و جرأت ندارن به من چپ نگاه کند. درخت سی جوان با این حرفا به خود لرزید و داشت باور میکرد که سمردهی و سود داشتن برای مردم جز دردسر سر چیزی در پی ندارد. با این فکرها به خود لرزید و کز کرد. گریهاش گرفت. بچه ها و مردهای روستا کم کم داشتند به آنها نزدیک میشدند. درخت بزرگ قاه قام میخندید و نرزش شاخه های درخت سیب جوان لذت می بود. وقتی بچه ها و مردهای های روستا به دو درخت رسیدند یکی از آنها گفت اولین درخت سیب رو قطع, قطع کنیم بعد درخت بزرگ رو یکی دیگر از مردها گفت درخت سیب رو باید به طور کلی قطع قطع کنیم اما درخت بزرگ رو نمی‌تونیم. فقط مجبوریم شاخه تبر بزنیم و جدا کنیم درخت سیب جوان گریه سرداد و درخت بزرگ از روی شیطنت خندید. اما ناگهان پیرترین مردی که در بین آن مردم بود گفت هیچ کدوم از شما حق نداره به این درخت سیب آسیب بزنه یادتون رفته که چی میوه های شیرینی به شما داده؟ بچه ها هورا کشیدند و تأیید کردند که خوشمزه ترین سیب هایی که آن سال خوردند سیب های همین درخت بوده است مرد هم حرف بچه ها را تایید کردند و به اتفاق تصمیم گرفتند نه تنها به درخت سیب دست نزنند بلکه مواظب باشند که هیچ کس دیگر هم به آن دست نزند. بعد همگی با هم افتادند به جان درخت بزرگ مرد پیر گفت گفتید فقط شاخهای این درخت و تبر بزنیم؟ نه این درخت رو باید از ریشه درانیم چون زمستون امسال سرده و به هیزون زیادی احتیاج